شیگه ماتسو یادداشت‌های های روزانه برادرزاده را تا اینجا رو نویس کرد و انجام بقیه آن را به همسرش کووا گذار کرد همسرش در نوشتن از او سریعتر بود از پس پری روز که شیگه ماتسو همراه با آاتسو یاشی و دوستی دیگر رهاسازی مشترک بچه ماهی های کپور را شروع کرده بودند با اینکه ضرورتی هم نداشت اما اگر برای گشت به محل استخر نمیرفت دلش آرام نمیکرد پریروز دو بار و دیروز هم با اینکه باران میبارید سه بار رفت. یاسوکو دیروز هنگام اسرانه با گفتن سرکشی از استخر قانون سانکین کتای شوهرم است اما اگر از بالا نگاه کنیم احتمالاً چندان لذت بخش نیست، ابراز هم دردی کرده بود. یعنی در این کار لذتی وجود داشت که آنکه از بالا نگاه میکرد آن را نمیشناخت. لذتی مانند لذت ماهی گیری. شیگه کو. برای قانون سانکین کتای بیرون میروم رویم ادامه یادداشت ها را لطفا رو نویسی کن بهتر است نوشتنت مانند خط معمولت زیبا نباشد تا می توانی لطف با خطی ساده بنویس ممکن است خواندن خط خوش برای واسطه ازدواج مشکل باشد شیگه ماتسو هنگام خروج از خانه این چون این کار را به همسرش سپرد و برای سرکشی از استخراعات سویاشی به پشت تب پره. شگه و آتسویاشی و فردی به نام آساجیرو به طور مشترک با استفاده از سبوس برنج و شفیره کرم ابریشم در طول تابستان در این استخر و چماهی کپور برای رهاسازی در استخر بزرگ آکیاما پرورش می آنسه هم با تغذیه و استراحت با پیشرفت بیماری مقابله می کردند. با اینکه گفته می شد استراحت اما خوابیدن تنها هم سمری نداشت. کسی هم نمیخواست و نمیتوانست فقط به استراحت بپردازد. پزشک میگفت علاوه بر کارهای سبک پیاده روی هم خوب است. اما خوب نبود رئیس یک خانواده که به ظاهر سالم به نظر می رسید، آتل و باتل در جاده ها پیاده روی کنند. از قدیم هم شنیده نشده بود که کسی در این روستا پیاده روی کرده باشد. به عنوان قانون نانوشته یکی از رسوم سنتی چیزی چون پیاده‌روی امری قابل قبول نبود اما اگر به جای ماهیگیری می‌کردند چه؟ پزشک درمانگاه و پزشک متخصص بیماری های قلبی در شهرک فوچو ماهیگیری را چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ پروتئین برای تغذیه و تقویت مفید می دانستند می سید ماهی غزلالای آبهای آزاد مفید نیست چون باعث سردی بدن می شود اما ماهیگیری کنار استخر روش درمانی یک سنگ و پرنده است در حین ماهیگیری فکر انسان برای مدتی آزاد می شود ماهیگیری مانند خوابی امین باعث استراحت و آرامش سلول های مغزی می شود اما عمر مفید را صرف ماهیگیری کردن هم موجب سوء تفاهم افرادی می شود که نمیشه درگیر کار بودند در عمل شیگ ماتسو و اتسویاشی مشمول های رک غیر قابل چشپوشی زن آبیار استخر شدند. آن موقع اوج کارهای کشاورزی بود. همه گرفتار درو گندم و نشای شالیزارها بودند. آن موقع سال، اوج گرفتاری و کار برای خانواده های کشاورز به شمار می آمد. بهترین زمان هم چه برای ماهیگیری در رودخانه، چه برای ماهیگیری در استخر، روزهای بعد از بند آمدن باران است، وقتی شیگ ماتسو و آقای آتسویاشی در ساحل استخر بزرگ آکیاما مشغول ماهیگیری بودند، آبیار به آنها گفت: هوای خوبی است، نه؟ اگر همین بود مسئله‌ای نبود. اما زن ایستاد و با لحنی نامعمول گفت: شما دو نفر مشغول ماهیگیری هستید، نه؟ با اینکه این همه گرفتاری وجود دارد. به هر حال طبقه مرفه هستید دیگر. زن آبیار اولهی روی سرش گذاشته و سبدی بزرگا خالی را به پشت گرفته بود. یعنی چی؟ آتسویوشی در حالی که به شناور غلاب در سطح آب نگاه می کرد، این را گفت و ادامه داد. تو که این را آبیار هستی، آبیار به چه معناست؟ اگر زن آبیار زود می رفت خوب بود، اما او امدن به ساحل نزدیک تر شد. آبیار، این که گفتی طبقه مرفه منظورت چه کسی بود؟ اگر منظورت ما هستیم که تصورت خیلی پرد است. مرفع کاملان فرق دارد. آبیار، چرا درباره چیز دیگری حرف نمیزنی؟ آتسویوشی آدمی خوشتینت و خون سرد بود. اما برخلاف هر روز نکه چوب ماهیگیریش آشکارا میلرزید. ای زن آبیار، ما به دلیل بیماری اتمی به سید ماهی کپور زرد مشغولیم که توصیه پزشک پزشکم هست. طبقی مرفه فکر می ما بیماران طبقه مرفه باشیم؟ ما می خواهیم کار کنیم خیلی هم دوست داریم کار کنیم. اما خانم، اگر ما کار سخت انجام دهیم تمام اعضای بدنمان خود به خود دچار مشکل می شود. دچار بیماری بسیار ترسناکی میشویم. اه؟ اینجوریست؟ آنچه می گویید بیش بهانه کردن ماجراهای های پیکادون است. یعنی چی؟ این چه برداشتی است؟ حتی احمد خواهم میفهمم باید استراحت کنیم ما از هیروشیما جان به درباردیم و برگشتیم فراموش کردی آن زمان برای عیادت ما آمدی و ما را قربانیان محترم نامیدی بماند که دروغ بود یا واقعیت اما فراموش کردی که اشک بر دیدگانت جاری شد ا اینجوری است آن جریان مربوط به قبل از روز پایان جنگ بود هر که هم بود در زمان جنگ چونان حرفایی میزد اما حالا حرفهایت سرزنش بیدلیل است بهتر بود زن زودتر میرفت اما ایستاده و با احساس یک بیوه فاتح حاضر جوابی میکرد اما آدسویوشی چرا چون این حرفایی میزنی فراموش کردی آن زمان به عیادت ما آمدی؟ ببین کی به کی میگوید. مطمئن باش چنان حرفایی را من نزدم لطف کن و بیشتر از این با لجبازی حرف نزن چی لجبازی است آبیار؟ شاید چون حفاظت از کانال های ورودی استخ به تو واگذار شده فکر میکنی استخ مال توست این خیال اشتباه بزرگی است اگر تو مسئول کانال های استخر هستی نباید به کسی که اینجا ماهیگیری گیری می کند اعتراض کنی. آبیار اینها را نمی دانی با همه این حرفها ماهیگیری شما همیشه نشانه رفاه است به این دلیل من می گویم طبقه مرفه. چی میگی بیوه ناگهان آنات خواست برخیزد اما چون زمینگیر بود نتوانست دو پایش را به سمت شیبه داخل ساحل دراز کرده بود و نمی برخیزد به شکلی که از ساحل سر نخورد و نیفتد آهسته واسنش را به سمت آب استخر برگردند. در این فاصله آبیار از باریک راهی رفت که در پایین ساحل شیب پیدا می کرد. یک بند سبد خالی را روی یک شانه انداخته بود. کاری که اخیرا رایت شده بود. هرچند او پیشتر آن را به هر دو شانه میانداخت و حمل می کرد. اما عمدن این کار را کرد تا نشان دهد نیرومند است. چیست؟ کاملاً حقیقت هست آقای آتسویشی به مسیر حرکت آبیار که جمله را دوبار تکرار کرد نگاه انداخت و از کوره در رفت خیلی حسابی هم. بالاخره بلاخره این را گفت در حالی که با چوب ماهیگیری به سطح آب می کوبید. آبیار هم فراموش کرده که در هیروشیما و ناکازاکی بمب اطوم انداخته شده همه فراموش کردند جهنم سوزان هیروشیما را فراموش کردند و امروز فقط مراسم یاد بوده بامبارانه تومی برکزار می شود. قیل و مراسم حالم را میگیرد. گیرد. مزخرف نگو. هی hey, ماهی آمد. قلابت کشیده می شود. عجیب بود. شناور چوب ماهیگیریش که داشت و آن به سطح آب می زد داخل آب کشیده شد. وقتی آدسویشی چوب ماهیگیری را بلند کرد و قلاب را بیرون کشید کپور زرد بزرگی به قلاب افتاده بود. غلاب در حلقش فرو رفته بود. نیازی به گفتن نیست که این کپور خدای رهایی بخشان لحظه شد. خشم آقای آتسویاشی فروکش و تا پایان آن روز هم تعدادی ماهی سید کرد. اما از آن روز به بعد هم آقای آتسویاشی و هم شیگه ماتسو به خاطر خجالت از رفتن به استخر بزرگ برای ماهیگیری منصرف شدند. آقای آساجی دوست دیگر آنها از گروه خدمات بود، که در زمان بمباران به هیروشیما اعزام شده بود. او مثل آقای یاتسویاشی با تیب خاطر خود را باز خرید کرده و بازنشسته شده بود. بیماری او درست مانند شیگماتسو بود. وقتی عرابه دوچرخ سنگینی را میکشید یا در شالیزار کار می‌کرد، های آبکی ریزی داخل موهای سرش پیدا می‌شد. این ذرات ریز که مدام ظاهر می‌شدند، احساس بدی همراه داشتند. اما وقتی غذای مقوی میخورد و کارهایی مثل ماهیگیری انجام میداد، داد، حباب ها رفته رفته خشک می شدند. روش تقضیه این افراد بر اساس دستورات پزشک معالج دورگرد نبود، بلکه آنها از روش ارزانی پیروی میکردند که طبیب سنتی به آنها آموخته بود. غذا سه بار در روز، توفوی سرخ کرده و دو پیال سوپ میساشیرو که تکه های فراوان تروب آن بود. همچنین، یک تخم مرغ خام که باید حتما سر می کشیدند و یک بار در روز هم سیر می‌خوردند. در هفته یک بار هم برای معالجه داغ می‌زدند. جلو ورودی انبار خانه‌های این افراد همیشه تو زیادی آویخته بود. آقای اساجی را از دوران کودکی سید ماهی را دوست داشت و در سید مارماهی با دام لوله خیزرانی بسیار مهارت پیدا کرده بود. شب قبل از روزی که بمب اتم در هیروشیما انداخته شود، چون عضو از آزاد گروه خدمات کارگری بود، شبانه از خوابگاه بیرون آمد. از سمت غربی پل سومیوشی به کنار رودخانه رفت و لوله خیزرانی سید مارماهی را در کف رودخانه قرار داد. صبح روز بعد، سرگروه آنها را به آن محل آورد. چون صدای اعلان خطر حمله هوایی به گوش رسید، آقای آساجی رو همراه دوستش آقای آتسویاشی به زیر پل فرار کردند و درون قایقی سایباندار که آنجا بسته شده بود مخفی شدند. آن لحظه به علت بالاترین حد مد دریا عمق آب رودخانه تا دو متر بود. اما چون آژیر اعلان رفع خطر به صدا در آمد، آقای آساجی رو از داخل قایق بیرونم. دوله خیزرانی را بالا کشید و برای بیرون آوردن مارماهی دور از چشم مردم زیر سایبان قایق مخفی شد. آقای آتسویاشی هم زیر سایبان بود. سایبان این قایق با پارچه زخیم بادبان پروسلی درست شده و هرچند قدیمی و دست دوم بود اما با رنگ زرد جلفی آمیزی شده بود. پرده هایی هم که اطراف آن کشیده شده با همان رنگ زرد رنگ شده بود. در آن لحظه نوری پرید رنگ مانند نور آتش روبا پخش شد و انفجاری عظیم قررش کرد. همزمان محور دماغه قایق با شدت شروع به حرکت کرد و لبه آن به لبه قایق های کناری برخورد کرد. هر دو زمین خوردند و صدمه دیدند. گوزه پای آقای آتسویاشی به لبه قایق اصابت کرده بود. بعد که نگاه کردند، قسمت بیرون مانده لوله خیزرانی از لبه قایق بر اثر نور یا حرارت حاصل از انفجار سوخته و زغال شده بود. قسمت دیگر آن به رنگ خیزران سبز بود. چون لوله خیزرانی را برگرداندند از درون آن کمی آب گرم بر کف قایق ریخت. لبه ها، دماغه و عقب قایق سوخته اما زنجیری که قایق با آن به اسکله بسته شده بود، سالم مانده بود. پارچه برزنتی زرد رنگ سایبان هم نسوخته بود. ظاهران رنگ زرد به خوبی مانع نور شده بود. چون هر دو نفر آنها زیر سقف برزنتی بودند، هرچند در آینده از بیماری اتمی در امان نماندند، نسوختند و تاول نزدند. علت علیل شدن آتسویاشی اصابت قوزک پایش به لبه کشتی و شکستن آن بود. اینها اطلاعاتی بود که شیگه ماتسو بعد از برگشتن به روستای کبا از خدا آنها شنید. شیگه ماتسو و آن دو نفر دیگر بعد از مدتی ماهیگیری در استخر بزرگ را کنار گذاشتند. اما به پیشنهاد آقای آتسویاشی تصمیم گرفتند سه نفری با هم به رها کردن بچه ماهیهای کپور در استخر بزرگ مشغول شوند. آقای آتسویاشی گفت من برای روکم زن آبیار، و آدم کردنش این تر و به ذهنم رسید. با این همه این ایده چندان فکر بکری هم نبود. زمانی که فصل کاشت شالیزار میشد بچه ماهی ها را از محل تخم ریزی ماهی در روستای تسون کان مارو تحییه می کردند. در طول تابستان در استخر درون خانه آقای سویاشی پرورش میدادند و دویست و ده روز بعد در استخر بزرگ آکییامار رها می کردند. بچه ماهی ها سرمایه گذاری مشترک سه نفر بود و قرار شد بلافاصله فاصل سه هزار قطعه بچه ماهی را رها کنند. با این حساب سرمایهگذاری گذاری می کنیم. نمی توانند به سرمایهگذاری و ماهی گرفتن تفریح بگویند. در این صورت در روزهای آفتابی هم می توانیم ماهی گیری کنیم. شاید بهتر باشد همه جا بگوییم 20 تا بیست و پنج هزار قطعه خریده و رها کرده ایم. شیگه ماتسو و آقای آساجی رو هر دو با برنامه آقای آتسویاشی موافقت کردند. آقای آساجیرو به شهرداری رفت و مجوز رهاسازی بچه ماهی را در استخر بزرگ گرفت. برای کسانی که صلاحیت ماهی گیری داشتند شروطی وضع کردند و آن را محدود به اعضای اتحادیه کانال های استخر بزرگ کردند. این شروط مطابق با وضعیت رایج اتحادیه های کاربران آب بود. بنابراین مشکلی وجود نداشت. حالا دیگر شیگه ماتسو و دوستانش می توانستن بی هیچ خجالت و نگرانی ماهی بگیرند. همانطور که آقای آتسویوشی گفت، اینکه خود آنها سرمایهگذاری و خودشان ماهی سید می کردند، دیگر تفریح نبود، بلکه کار یا تجارت بود. دکتر پیاد روی را هم به عنوان یک برنامه روزانه مهم توصیه کرده بود. اما چون برای پیاد روی نمی شد سرمایه گذاری کرد، پس راحت طلبی به حساب می آمد. ایستاد حرف زدن هنگام رفت و آمد، همچنین خواب نیم روزی در معبد بودایی کنار راه هرچند سرمایه گذاری نبودند، اما راحت طلبی به حساب نمی آمدند، زیرا رسوم و آداتی صدها و هزاران ساله به شمار می آمدند. وقتی به مزرعه تخم ریزی ماهی در روستای تسون کان مارو سفارش بچه ماهی دادند، رئیس جوان آنجا، سوار بر موتورسیکلت برای بررسی استخر خانه آقای آتسویاشی آمد. دمای آب، میزان آب جاری، عمق آب، مساحت و غیره را اندازه گرفت. نفوذ یا عدم نفوذ سموم کشاورزی را بررسی و در مورد گیاهانی تحقیق کرد که به صورت طبیعی در استخر رشد می کنند. بعد از آن درباره نوع و مقدار غذای فراوری شده برای سه هزار ماهی چیزهای روی کارتی نوشک حروف انگلیسی هم داخل آن بود اگر دمای آب این استخر در وسط زمستان پانزده و در اوج گرمای تابستان بیست و درجه باشد هیچ مشکلی برای رهاسازی و پرورش آوکو و تانگوی ندارد این درجه است و موقعیتی عالی فراهم شده است رئیس جوان این گونه قضاوت کرد استخر بزرگ آکی را هم دید و برگشت به ماهی کپور یک ماه بعد از خارج شدن از تخم آوکو میگویند و تانگو هم کپور یک ساله است چند روز بعد رئیس جوان مزرعه تخم ریزی با کامیون مخزنی حاوی آوکو و پمپ اکسیژنی آورد درون مخزن پر از آوکوهایی بود که تعدادشان معلوم نبود چند ده هزار قطعه است و قرار بود در استخری در آن نزدیکی رها شوند آقای یاتسویاشی همانطور همانطور که از قبل به او سفارش شده بود چوبهای خیزرانی آورد که به آن صدف آویخته شده بود این چوبها را در اطراف استخر برای دور کردن راسوها در زمین فرو کردند آه صدای صدفها دوست نیست نه؟ صدفها برای قدیمیهای این اطراف یادآور گذشته ها خواهند بود رئیس جوان لحظه از گرفتن بچه ماهی ها دست برداشت و این جمله را گفت این ماجره مربوط به چند روز قبل است روزی که باد نواشی رو به شکل دلتنگ ای میوزید. رئیس جوان بدون تلف کردن حتی یکی سه هزار بچه ماهی به استخریخت. استخر پرورش ماهی خانه آقای آقا یادسویاشی چیز نامعمولی نشان نداد. تعداد بچه ماهی هایی هم که مردند زیاد و چشمگیر نبود. وقتی شیگه ماتسو خیالش بابت بچه ماهی ها راحت شد و برگشت یا سوکو داشت دوده دودکش حمام را پاک می‌کرد. صدای زنجیر درون دودکش بلند شده بود. همسر شیگکو داشت حسیرهای پوشالی حیات را در ورودی انبار قرار میداد. شیگکو به شیگماتسو ماتسو که تا نزدیک در آمده بود گفت: بهتر نیست خاطرات یاسوکو را خلاصه کنیم. آن زمان صحبت از باران سیاه باعث سوء برداشت نمیشد چون کسی از ترکیب سمی آن آگاه نبود. اما حالا همه می‌دانند باران سیاه ماده سمی است. اگر آن قسمت را رو نویسی کنیم، مثل قبل باعث سوه برداشت نخواهد شد. تا کجا پیش رفتی؟ فکر کردم برای باران سیاه با شما مشورت کنم. بنابراین به همان صورت رحایش کردم. چون نوشته است باران سیاه بر آنها بارید. باران سیاه؟ بسیار خوب، یک کلمه هم از آن رونویسی نویسی نمی کنیم. شیگه هم تایید کرد. تمام وقایع روز بانباران، یاد شیگه مازو آمد و در حالی که داشت عصبانی میشد وارد و اتاق شد روی میز انباری دفتر رونویسی ها و دفتر یادداشت یاسوکا روی هم گذاشته شده بود چون حجم آنها را مقایسه کرد دید میزان رونویسی های او یک پنجم یادداشت ها هم نمی شود باران سیاه باران سیاه است سوء برداشت سوء برداشت است و رسالت رسالت شیعه در حالی که هنوز خشمگین به نظر می رسید، خاندن یادداشت‌های یاسوکو را شروع کرد. ادامه خاطرات روز ششم ماه اوت، یعنی روز افتادن بمب بود. یاسوکو در روز نهم ماه اوت در اقامتگاه موقت در فروی چی اینها را نوشت. فکر می خورشید غروب کرده، اما وقتی به خانه برگشتم به تدریج هوا سر جایش بر. و فهمیدم به خاطر ابرهای سیاهی که آسمان را پوشانده هوا تاریک شده است آن موقعی بود که شوهر امه و امه شروع به جستجوی من کرده بودند شوهر در ایستگاه یوکا بود که بمباران انجام شد و گونه چپش زخمی شد خانه خم شد اما امه زخمی نشده بود به گفته شوهر متوجه شدم که چیزی مثل شتک لجن بر من ریخته است بلوز نیم آستین سفیدم به همان شکل آلوده شده و قسمت از لباس سیاه شده خراب شده بود. وقتی در آینه نگاه کردم، فهمیدم جز قسمت هایی که با پارچه سرپوش زده هملات هوایی پوشانده شده بود، سایر قسمت ها با همان رنگ سیاه خال خال شده است. در حالی که به چهره خودم در آینه نگاه می کردم، یادم آمد با راهنمایی آقای نجیما سوار قایق شده ایم. و همان زمان بود که رگبار باران سیاه آمد. فکر می هنوز ساعت ده صبح نشده بود. ابرهای سیاه با قررش رعد از سمت شهر پیش آمدند و آنچه ریختند بارانی به اندازه و قطر یک خود نویس بود. هرچند عواط تابستان بود اما طوری سردما شد که لرز کردم. باران خیلی زود بند آمد. به نظر میرسید دچار بی و پریشانی ذهنی شده هم. فکر کردم آیا بارش رگبار از زمان سوار شدن به کامیون نبوده است؟ شکی نبود که بخش زیادی از هوا هوشم مختل شده بود. انگار باران سیاه برای تخریب حس و هوشم ناگهان آمد و ناگهان رفت. بارانی بود که سهرم کرد. دستهایم را در آب چشم شستم و با اینکه صابون مالیدم باز هم سیاهی ها پاک نشد. سیاهی کاملا به پوستم چسبیده بود دلیلش را نمیدانستم وقتی به شوهرمه نشانشان دادم گفت شاید روغن بمب آتشزا باشند احتمالا دشمن بمب روغنی انداخته بعد از آن به چهره من نگاه کرد و گفت شاید گازی سمی از جنس لجن با چسبندگی زیاد باشد دشمن احتمالا بمب گاز سمی انداخته بعد از آن دوباره به چهرم نگاه کرد و گفت گاز سمی دشمن نیست. احتمالاً انبار داروی ارتش ژاپن منفجر شده و به اطراف پاشیده است. شاید کسانی مانند ها انبار باروت را آتش زدند. شاید انبار های سری ارتش ژاپن بوده باشد. من بعد از اینکه در ایسگاه یوکاگاوا بمباران شدیم، در امتداد خطوط پیاده برگشتم اما باران سیاه نبارید. به احتمال زیاد روغن پرتاب شده بود. فکر کردم اگر گاز سمی بوده باشد کارم تمام است لرزیدم و بعد هم غمگین شدم چند بار به کنار چشمه رفتم و دستهایم را شستم اما اثر باران سیاه پاک نمی اگر هم آنها را به عنوان لک و رنگ نگاه می باز هم فکر می کردم چیزهای مهمی هستند این چونین خاطرات یک روز یا تمام شد همانطور که همسرش می گفت چاره ای نبود جز این که قسمت های مربوط به باران سیاه را خلاصه کنند. اما اگر یاد خلاصه شده را به واسطه ازدواج بدهند و بعد او اصل خاطرات یاسوکو را بخواهد چه؟ میخواست فکر کردن به این موضوع را کنار بگذارد. گذشته از ساعت هشت صبح روز ششم ماه اوت، یعنی روز افتادن بمب یاسوکو بیشک در جایی به فاصله بیش از ده کیلومتر از محل اصابت بمب بوده. آن زمان شیگاماتسو در شهرک یوکاگاوا به فاصله دو کیلومتری محل صابت بمب، گونهش سوخته اما هنوز هم زنده بود. بین افرادی که آن زمان در حوالی یوکاگاوا سوختند، جان به در بردند. به نظر میرسد کسانی هم هستند که ازدواج کردند. حتی به ذهن شیگاماتسو رسید که یادداشتهایی را به واسطه ازدواج بدهد که آن زمان خودش نوشته. این دفعه نباید ازدواج یا به هم جذابیت یاسوکو بسیار زیاد شده و با آنچه چه تا کنون بود کلی فرق داشت. چشمانش هم طوری درخشان شده بود که آدم به این فکر میافتاد که نکند بیماری بازدو دو داشته باشد. واقعا سرزنده و شاداب بود. به خوبی فهمیده میشد که او مطابق روز و جوری که زیاد به چشم نیاید خود را می آراید. باید حدس میزد، خواستگاری خاستگاری این بار چقدر برای یاسوکو مهم است؟ این احساسات که کهشیگمات را اذیت می میکردند، ناگهان در هیئت جملاتی با صدای بلند از دهانش خارج شدند هی شگکو یادداشت های اتمی من را بیار هی hey شگکو فکر کنم آنها را توی گنج خودت گذاشته باشی آن یادداشت ها را به واسطه ازدواج می دهیم یادداشت های اتمی من را بیار شگکو که قبل از این جمله ها در اتاق کناری بود خیلی زود یادداشت بمباران اتمی این یادداشت‌ها را باید خیلی زود رونویسی کنیم چون قرار شده آن را به بخش مرجع کتابخانه مدرسه ابتدایی اهدا کنم قبل از اهدا هم به واسطه ازدواج نشانش خواهیم داد شاید بهتر باشد یادداشت‌های یاسوکو را به واسطه نشان دهیم پس این یادداشت‌های بمباران اتمی را پیوست یادداشت‌های یاسوکو خواهیم کرد به خاطر اهدا به بخش مرجع مدرسه ابتدایی به هر حال مجبوریم آن را رونویسی کنیم اگر این کار را بکنی کار خودت زیادترا زیاد به شودشگان ندارد از به تولد توی خونم بوده که به کارم چند شاخه بدهم. این یادداشت های بمباران اتمی تاریخ من است که در کتابخانه قرار خواهد گرفت. شیگه ماتسو وقتی دید شیگه کست ساکت شد دفتری نو برداشت و رو کردن یادداشت های بمباران اتمی را شروع کرد. ماه سپتامبر سال 20 شوا سال 1945، شهرک منطقه آسا شهرستان هیروشیما شیگه و شیزوما در اتاقی از خانه اجاره‌ای که به آن پناهنده شده ایم این یادداشت‌ها را می نویزد. عنوان آن یاد های بمباران اتمی خواهد بود روز ششم ماه اوت هوا صاف است تا دیروز هر صبح صدای آشنای رادیو را می شنیدم که می گفت یک گروه 8 فروندی از B29ها به سمت جنوب تنگه کی ای 120 کیلومتر روی دریا به سمت شمال حرکت کردند امروز صبح هم گزارش داد یک فروند به29 به سمت شمال حرکت می کند اما چون مانند گزارش هایی بود که هر روز صبح و شب به آن گوش می کردیم چندان به آن توجه نکردم اعلان وضعیت خطر عادی شده بود و چیزی جز آشیر معمول نیم روز نبود صبح داشتم سرکار کار مثل همیشه برای سوار شدن به تراموای خط کابه به ساختمان ایستگاه یوکاگاوا وارد شدم درست قبل از حرکت تراموا بود در جایگاه اخزبلیت یکی از کارکنان ایستگاه با چهره آشنایی ایستاده بود روی سکو یک مسافر هم وجود نداشت وقتی به سکوی سوار شدن رسیدم صدایی گفت سابقه خیر آقای نگاه کردم خانمی که رئیس کارخانه قلموی نخی تاکهاشی بود در حالی که انگشتانش را درون موهای آشفتش فرو برد این را گفت آقای شیزوما هرچند اینجا خوب نیست اما در مورد یاد که چند روز قبل درخواست کردم اگر بالایشان علامت، آن لحظه درست قبل حرکت تراموا و در سمتری سمت راست آن پرتوفی از نوری شدید به چشم آمد تا آن حد که چشم را تیر کاملا کور شدم و نمیتوانستم چیزی ببینم. درست مثل این بود که به آنی پرده‌ای سیاه بر همه چیز بکشند. برو بیرون، برو بیرون، فریاده شو، درد دارد. آه! صدای جیغ و صدای فریاد. همزمان با آن ناگهان مسافران از داخل تراموا بیرون ریختند. من از در خروجی روی های جهت مخالف سکوپ پرتاب شدم و روی بدنی نرم افتادم. که به نظر می رسید زن باشد روی من هم فردی افتاد که جسته سنگینی داشت در چپ و راست هم افراد روی همم هم باشده شده بودند ای hey, تمومش کنید تمومش کنید فریاد خودم را هم زمان با فریاده بسته اینجا اینجای کسی که رویم افتاده بود کنار گوشم می شنیدم اطرافم از صدای جیغ و فریاد بود کسی را که رویم افتاده بود به سمتی حل دادم و به سختی بلند شدم افرادی را که توان کمتری داشتند با فشار کنار زدم و جلو رفتم تا به چیزی سخت برخورد کردم فهمیدم سکوست با آرنج آدمها را کنار زدم و چهار دست و پا بالا رفتم در اینجا بیشتر از فریاد صدای آهاناله بود چشمانم بسته بود در حالی که میان موج مردم فشرده می شدم یک، دو و سه قدم پیش آمدم تا دوباره با چیزی سخت برخورد وقتی فهمیدم ستون است، با اشتیاق و قدرت تمام بغلش کردم. خودم را به آن فشردم. به نظرم می رسیدی یک بار از سمت چپ فشارم می دهند و یک بار برعکس از سمت راست. انگار می از ستون جدایم کنند. در این زمان دست و فکم را به ستون فشردند و در شانم دردی در حد شکستن احساس کردم. برای فرار از این درد بهتر دیدم دستم را از ستون بردارم و میان موج انسانی بروم ولی به علت فشار زیاد نتوانستم راهی در جریان جماعت افراد باز کنم و جلو بروم پس همچنان با فشار به ستون چسبیدم برداشت خودم در آن موقعیت این بود که آن چه به 29 انداخته بودند بمبی حاوی ماده سمی بوده که چشم را کور می‌کرد آن بمب هم مستقیما به تراموا برخورد کرده بود سرانجام اطراف ساکت شد پس با احتیاط چشم هایم را باز کردم. همه چیز جوری دیده می شود. انگار در پوششی از مه قهوه کم فرو رفته و از آسمان چیزی مثل گچ باریده بود. روی سکوهی هیچکس کس نبود. با آن همه سر و صدا حالا حتی در ساختمان ایزگاه هم سایه هیچ یک از کارکنان به چشم نمیخورد خورد. احتمالا من به علت فشرده شدن به ستون ناخداگاه چشم هایم را بسته نگه داشته بودم. در اطراف ستون ده ها رشد سیم و کابل برق شده بود. فکر کردم ها یا روشی برای تشخیص خطرناک بودن آنها وجود دارد. یک تکه از الوارهای کوچکی را که به صورت پراکنده افتاده بودن برداشتم و با آن سیمها را به هم وصل کردم اما جرقه نزد. بعد با پرهیز از جاهایی که برق جریان داشت در حالی که با استفاده از یک تکه الوار سیم و کابلها را کنار می‌زدم. از تراورس های فرسوده روی هم گذاشته گذاشتم و از ایستگاه خارج شدم. عجیب اینکه خانه های امتداد ایستگاه همه فرو ریخته و سطح زمین با موجی از سفال پوشیده شده بود. در حوالی چندمین خانه نزدیک ایستگاه دختری 16-17 ساله نیم را از میان موج سفالها بیرون آورده بود و در حالی که با دست سفال های اطرافش را پرت می کرد، جیغ های گوش خراشی می کشی. شاید میخواست بگوید کمک اما نمیتوانست آن را با کلماتی مفهوم بیان کند هی hey, دختر میخواهم از آنجا بیرون بیاورمد اگر صفال ها را همینجوری پرد کنی نمیتوانم نزدیک شوم. پیرمرد رهگذری که ظاهر از شبیه غربی ها بود این را گفت و به اون نزدیک شد اما دختر به سمت او سفال پرتاب کرد پیرمرد سری فرار کرد و رفت بسیار عجیب بود که دختر میتوانست بالاتنش را به آن راحتی حرکت دهد در حالی که از کمر به پایینش را الوار یا تیرک یا چیز دیگری گرفتار کرده و درون انبوه از نیر بود. استفالهایی هم که پرت میکرد تا مسافت دوری میرفتند. استفالها را می شکست، کوچک می کرد و میانداخت.